سبا و نکت آن ظلف موشک بوداری بیادگار بمانی که بوی او دلم که گوهر اسرار خسن عشق در اوست توان به دست تو دادن گرش نکوداری در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت اینجز اینقدر که رویبان تاند خود آری نوای بلبلت گل کجا پسند افتد که گوش و حوش به مرغان حرز گود آری به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد خود از کدام خمست این که در سبو داری به سرکشی خودی سر و جوی بار مناست که گرب دورسی از شرم سر فرود آوری به سرکشی خودی سرب جوی بار مناز که گر گرب دورسی از شرم سرفرود آوری دم از ممال که خوبی چو آفتاب زدن تو را رسد که غلامان ماه رود آوری قبای حسن فروشی تو را و را زد و بس که همچو گل همه آیین رنگ و بوداری ز کنج سومه حافظ مجوی گوهر ایش قدم برون اگر میل جستجو داری